در چند دقیقه بعد شعر حافظه و الان یه قصیده ای هست مال ملک و شعرهای باهار این قصیده هایی که شکایت از حبس درش هست در ادب فارسی بهش میگن حبسیه حبسیه یعنی شعری که شاید زندانی شده بعد اونجا شکایت میکنه از زندان ناراحتیش نراحتیش اول کسی هن که این کارو کرده محصول سعد سلمان حبسیه هاش هم از همه بهتره و هم قبل از هم. ما کتاب تو رو هم مصادره کردیم okay. کتاب منو به تو نرسوندم ارز کنم که فهارم حبسش می‌کنند چند بار چون چایر سیاسی بود و دوست دیداش دکتری به نام دکتر لغمان ادهم که لقب لغمان رو دوله هم داشت و چند بارم به وزارت رسید حتی دکتر خیلی درجه اولی. خیلی معروفی بود در ایران و مخصوصاً خیلی یه چیزی داشت طبیعتی داشت که کسی که فوی مرض رو پیشناخت و مثلا دکتر مخصوص مرحوم فروغی بود به وقتی مرحوم فروغی حالش به هم خورده بود رفتن سراغ دکترای دیگه نبود دکتر لغمان دوله نبود رفتن امیر علم که آوردن اینا ماجد کردن محسن هم نزید رو بمیرسیم تا دکتر لغوانت هم میرسه و میاد و بعد میگه اون کارو رو بکنیم، اون بکنیم اونا هم که درست عکس کاران رو می‌کنم خلاصه راش می‌بسیم این رفیق ملک شوهرها بود و ملک شوهرها در دوره پهلوی اول زندانی سیاسی دندانی سیاسی اون روزگار رو کسی جرعت نمی کرده اصلا سراغش بریم مثلا جرعت نمی کرد اسمشه ببریم ولی این رفته نه تنها رفته به ملاقاتش رفته دنبال کارش دویده بعد رفته پلوی زن و گفته که موادا شما معطل بسیم نه موادا ناراحت پول باشین چیز کرده در عالم دوستی و تا وقت که به هر حال اونای که گوش به حرف لغمان دولو بالاتر از لقمان دوله نمی کردن راجب زندانی خود رزاشا شخصا تصمیم می کنه تصمیم می گیرن به هارو تبدیلش می کنن به اسمان که اون تبدیلی به اسمان از حبس توی زندان بدتر بوده خیلی بهش تحق می و هر حال در اونجا یه قصیدهی می سازه در مده دکتر لغمان ادهم و شکایت از هم و این رو بیشترسته برای که لغمان اطهم و الان در دیوانش بود. اما علت این که من اینو خوندم برای اینه که من آییقه ها بود شاعر باشم یه قصیدهی میساختم در معت این بزرگواری که اینجا ندیگه به هر حال ایشونم به عبت زیاد کردن و من فقط این قصیده رو که یکی در بصف یکی چیز کرده میخونم چون چون شاهکارم هست این شعر بسیار زیبا است هم نوشته این قصیده را نیز از اسفهان در شکایت از ابنای زمان و شرح احوال زن و فرزندان و ستایش دکتر لقمان دور ادهم از یاران خاص او بود سروده است میگه پشت مرا کرد زخم چنبری گردش این گمبد نیدو فرید هستم من ایسی آموزگار کرده جهودانم خبس از خرید پس که به من تیر به باغید و تیر روزم شد تیره و عمرس فرید جدا از پسر و دخترم دشمنم از بید پدر و مادری چون نگرم نیست گناه مرا غیر وطن دوستی و شاعری دزره آزاقی و خامعی گر نکشم ذلت فرمان پری کردم به درو زر و جاه و مال تا نکنم چون دگران چاکری نوکری دیوان دیوانگی ست درست نوکری دیوان دیوانگی مردم دانا نکند نفت کریم کرد کرده و نان می کورم مزدوری بهز دوستداری گستریم آقابت آز و تم خاوری است باید بگم که در همون دوره تیمورتاش که شخص دوم بود در من بگرد و وزیر دربار پهلبی بود در همون روزگار از پشت میز وزارت دربار که از اونجا امر و نه میکرده نخص وزیر و وزراء و همه جا گرفتن بردنش تو زندان و در زندان هم پشتنش و متاسفانه در زندان هم خیلی زفت میسوندار این مردی که به نظر مومد مرد خیلی مقتدری باشه یه مرتبه در هم شکست. آقابت آز و تمع خاری است وقعه تیمور مبین سرسری گرچه کنون هر تو به حبسندرین فرق بسیح هست در این دابری بر برو لعنت و نفرین کنند بر من احسنت تو خهید و فری پستی و اجزا رد و این اشاره به همون زحفه پستی و اجزا رد و خود دابدن. مستی و خودخواهی و مستکری خون دل خودخوری آسان تر است تا خود خون دل مردم پلی. حبس من این کیفر پیشینه هم است. بعد مکنه دو که کیفر بریم. وان کس که به من کرد. بعد روزی کیفر برد و بکترید. قیمت آزافی و اشرت بدان. ای که به آزافی و اشرت دارید. خسته شدم یا را و در دردارم. چیست کنون چافرد. شد که شد دامنم از ننگ تو شد که آمد دلم از کین عری عری یعنی آری یعنی این وحره دارم فرزندی حوشنگنا پسر بزرگش بود که اینجا رئیسی کالجی بود در امریکا و مرد چند پیش چند سالی دارم فرزندی حوشنگنا شد رند لحظه معاق فرید واصف سنگ چنگ چهار و دیگر مامی و مهری ملکی جو پری مهری ظاهران مهردادشی شی اون ستاهم اسم سه ستا دخترشن بعد هم یک دختر دیگه هم آورد به نام چهرهزاد که زن دکتر یحیی معاصر اهل کرمان گوشی باشت به مسل عقل و روح فشد مهم مح بود مادر ایشان چه بود کهکشان آن به که اجرام کند مادری گرب به طبیعت به گذاریش باز و از غم خرج بچگان گذری همچو راه کاخشان از نجوم خواه نکند پرمه و پرمشتری هفتم ایشان من در بسا چون فلک هفت زبی اختری لوتو و توهیدست و خمیگ زبا چون زنگین حلقه انگشتری لاغر و خمیده چو چنبر ولیک گرداغننده همه با لاغری گشتم چون چمبر و بازم به توت رنجان داخرد پلک چنبری خواهد تا بشتند این حلقه را حلقه نگیندان کند نگیندان یه انگوشتر خواهد تا بشکند این حلقه را حلقه نگیندان کند از درگری پس بنشاند به نگیندان در اون گوفر مت فلک سرگری لقما مدبله که همچون مسیح نینک سزدش دعوی پیغمبری چرخ هنر زابده ادهم که هست، واقع خنرش راگی و ناماوری هست، دلی پنهان در سینهش چون اقیام، واقعا معت این زیبایی خیلی کم چیزا بوده دیگه این اثر سر اخلاص و عقیده بوده کولی که نبوده است که خیلی معت است هست، دلی پنهان در سینهش چون اقیاموست، به آوری حمد او بر تو شود آشکار، بردرش هر روزی رویا محکمه اش پر بود از مرد و زن، او روغنی، لشکری و کشوری، با عمرا کم رسد، از بس که هست با فقرا و یشتر شفقتگری، بینت نبز و بنویست دواس، سیم دوانی بر برسرید نیم شبر خامیش از راه دور حاضر گردد به مثال پری منعم و در به نزدیک او فرق ندارند در این تاقوری از تن بیمار کشد در پا چه بود باطنی و ظاهری مردم مردانه گریبان مرگ و از در مشکوم مشکوم اداخجره گیرد مردم گریبان مرگ و در مشکو کنداش وحبری مو یه مرض را بشنافست زدور مرحوم دکتر اقبال هم میگه در بیماری های او خونی، این بوی بیماری رو میشنفته وقتی می اومده از دور میگه این مریض مثلا هست بگرد یا فلان یه مرض را بشنافست زدور چون رسد از را زهی عبقری عبقری با این و یعنی ناوزه چون شنود بستری آواز او گیرت آرام دل بستری جمله جوان مردی و آزاب جمله خیرتمندی خردمندی و خوشمهزری او را بودند شهان هاستا روز و شبان با همه خواهشگری خدمت مردم را کرد اختیار و آمد از خدمت شاهان فرید چون که به مخلوق خدا گشت یا لاغ کرد خدا یاوری گشت در این ملک نخستین پزش خینت نکونامی و نیک اختری داد خدا یشت زن بالا و دختر و چندین پسر گوپری و علاوه بر همه اینا یافت ستاینده یکی چون باها. سلب و میه فرخی و امصولی. یارا در طبق و ادب زیده چرخ با من و تو کس نکند همسری من به سزا وصف تو را برکورم تو به سزا مدهمه مرا برکوری این عوض آن به مهبست مرا دیدن تردید ز سر خم خوری رفتی نزدیک زن و بچه هم. شفقت کردی و لطف بستری خواهش بردی بر قومی که بود حیفت تو گر بر رخشان بنگری. داشتیان یا به سخنشان براست از سر خوشقلبی و باوری، گوش نکردن به فریافت و بیشرفان از خری و از کری، گوش به دانا نکند آن که هست گر به با و تن پروری هست متاو بر اینان کساد هرکه که فوزون تر بودش مشتری دشمن دانا یند یعنی این کافران دانش باشد برشان کافری چیست در این شهر گناه بها دیگ خردمندی و دانشبری زین رو شد حفظ به فصلی که بود مبسن گلچیدن و خونیاهگری گرد به کشندش نبود بس عجب را بود دشمن کپ کتری ورد نکشندش بود از دین خر اسمت بی, بی است ز بی چادری این مسئله معروفش که خونشستن بی بی از بی چادریه یعنی بیبی بی بدلی هست و اندازه خواهیم اونتا چادر نداره نه نمی‌تونید. αρنا کو از بیو بی بیست بی چادری خاطر دارام جهاندار پس پاو چا آوینه اسکندری مجبور بگید لیک نگو گت کس اشهوال من این فدا موزی و گوپری هر که غم خود خورد و نیست که در طم این مملکت مردری مردری یعنی مردری که مردری یعنی میراست مرد و زن از گرسنگی در خروش این امراغ کرده ورم از پوری جملگی از خوب خیاناقیش کرده رها قاعده نوکری حال مرا عرضه نیارند کرد تا برها از این مزتری یک طرح خاموش به خیر عموم لیت به بددوی مردم جری جود و سخا رفته و مردم میگیر جب محسد منده و دیگلتگری بینده گر کس که سری بیگناه بردم تیغ آمده از جاوری بر سخنی ارجم ما یک شاه بو چه در نفس آخری گر نروت پای زری میان، تام نزانتی تخیل جستری یک سره هم ظالم و هم دا است یک سره هم قاضی و هم محتری لقمان دار زمان یادگار این سخن تازه و نظم تری زان که با حق تو شود بی گناه پشت در مملکت برداری این ای بوده که در عنوان حق شناسی در صدایش دکتر دو لقمان هم خفن بوده فوق العاده ام زیبات چه من قربان به هر حال شما در بدترین اوقات به داد ما رسیدین و هیچ از شفقت و محبت هم باز نگرفتین و جای سپاس <تصفيق> حالا بریم سرکار حافظ خهی چی میزید؟ خهی و فری عدات تحسین خوشا و خورمو احسنت و خهی و فری یه خلد و دو لعنه تو نفرین کنند بر من احسنت و خهی فری. فری خیلی خیلی هم طول دکتر جواهری بلهشون دکتر معالج بنده بودندن و در بدترین نهوار به داد من رسیدم من که شاعر نبودم خودم گفتم یه شعر که در این زمینه سرعوده شده شاعری از یه یهطبیری ستایش کرده بیارم ب بشنگم که بوددی که پس چیزی به دکار میکن؟ <تصفح> خود ناصر پل این فضل رو برداره بخونه؟ بیا, بیا هم نورداره می دوباره میدی به من؟ اون واسه همون برداره مطمئنی؟ آنان آنان که پاک را به نظرکی کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبش دبا کنند. محشوبه چون نقاب زروف بر نمیکشد، هرکس حکایتی به تصور چرا کنند. به تصور چرا کنند. چرا کنند. چون حسن آقابت نبرندی به و زاهدی است آن به که کار خود به عنایت رها کنند. بی معرفت نباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنن میخور که صد گناه زغیار در که صد گناه زغیار در هجاب میخور که صد گناه. گناه زغیار در حجاب بهتر زطاعتی که به روی و ریا کنند ایراهنی که آید از او بوی یوسفم ترسم برادران غیورش قبا کنند حالی درون پرده بسی فتنه می رود تا آن زمان که پرده بر افتت چها کنند گرسنگ از این حدیث بنالت عجب ندار صاحب دلان حکایت دل خوش ادا خوش کنند خوش ادا خطاب از دوام وصل میسر نمی شود شاهان تم التفات به حال کدام کن. عرض کنم که من حالا این غزل می خوانم خودم دوباره بعد از. آنان که خاج را به نظر کیمیا کنند آیا بوبت که گوشه چشمی به ما کنند دردم نهفته بهز طبیبان مدعی باشد که از خزانه قیبش دوا کنن معشوقه چون مقاب زروف برمی کشد هر کس حکایتی به تصور چرا کنن چون حسن عاقبت نه به رندی و آن به که کار خود به انایت رها کنن بی معرفت مبا که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنن می خورد. که صد گناه زعقیار در بهتر بهترز تاعتی که به روی ریا کنن که آید از او بوی یوسفم ترسم برادران قیورش قبا کن حالی در اون فرده بسیف حتفه می رفت تا آن زمان که پرده بر افتد چها کنن گر سنگ از این حدیث به نالت عجب مدار. صاحب دلان حکایت دل خوش ادا حافظ دوام بس میسر نمی شود شاهان کم اتفاق به حال گدا این غزل یه معارضه ای است یا نو جوابی است به غزل شاه نعمت الله شان الله ولی مرد بسیار جاسنگین و مرشد بسیار بسیار معروف و مقرد توجه و دارای مریدان بسیار بسیار زیاد و سید شجردار صحیحون نصبم بود یعنی از نسل مستقیم علی و فاطمه کاریسمام داشت و جذبم داشت و مریدان زیاد و یه چیزی شد برای خوریش و مریدانش در اهل کرمان بود اهل ماهان که مزارش هم الان در ماهان کرمانه و خیلی خیلی خیلی طرف توجه مردم بود و شاید ده تا کتاب یا بیشتر در شهر احوال شالمت الله و کاراش و برزش و زندگیش و تخنانش و مریدانش و اینا شد بنابراین آدم خیلی خیلی مهم نیست اگر از لحاظه تصبب و معارف تصبب پای مثلا ابو سعید عبورفل یا شیخ عبلاسن خرقانی یا ابو عبدالله خفی یا ابو اسحال کازرونی و امثال اینا نمیرسه ولی از نظر تعداد مریدان و نفوذ کلمه و اینکه حرفش هر همه جا در روم داشته باشه و هر کسی هرچه بگه ببوسند و به سر و چشم بگذارن از همه اینا پالتر و الان هم درشای نعمت اللهی دنباله سلسله‌ای هستند که شانهات الله بنیاد گذاشته که الان یه دستشون نعمت اللهی هستند که الان آقای دکتر نور و قبل از او دور ریاستین ریاستشون داشت یه دستم گنابادیا هستند که گنابادی ها منشعب از همین طریقت نعمت اللهی هستند هاجم الله سلطان سلطان علی قناوادی در دوره ناصرالدین شاه دعوی قضی کرد به سلسله برای خودش درست کرد و یه مردی به نام هاجم الله عبدسلی کیوان قزوینی جد این دوست شهید من مرتضی کیمان واعظ بسیار بسیار محبوب القول طرف توجهی بود فوق العاده بفن و در نتیجه مرید این گنابادی ها شده بود و تمام اعیان و اشراف و بزرگان شهر فیرون میمیدن با همبر آج ملبسدی و این دعوت کرد همه مردم رو پیوستن به گنابادی ها در حقیقت سلسله گنابادی رو او سلسله گنابادی کرد اما بعد از اونا پرید و به نظر شما که کرداری که اینا دارن با اون چه میگن مطابق نیست و آمد بیرون و کتاب در ردشون نوشت و در رد اصلا این وساطت شیخی و پیری و مرید گرفتن و نه با و کتاب‌های بسیار متعدد داره شد و مختصر به زبا اینکه میگه که من آدمی بودم که چندین هزار آدم جان و مال و سر و خونشون در راه من حاضر بودن بدن ولی من فکر کردم که اینا بعد پردا منتظرم که من روز قیامت اینا رو دستگیری کردم و رسوندم به سرمنزل نجات من خودم سرمنزل نجات تو بلد نیستم چجوری جواب اینا رو بدم؟ رجدانش بیدار بوده، ترک می‌تونه همین و با مختصف پولی که داشته، تمام رو می‌شونه به نوشتن و چاپ می‌کنه کتاب‌های متعدد تفسیر کیوان، بهین صوفن، راز بو کیوان نامه نمی‌تونه کتاب استوار و امثال اینا و در مقدار زیادی از اینا این کارای تنهانی درویش ها رو از هر طبقه و به خصوص درویش نعمت اللهی رو, رو میریزه بیرون از طبقه به هر حال حضرت اللهی ولی ارز کنم که سید شریف بزرگواری بوده آدم خیلی خوبی بوده ظاهراً طرف توجه از شاه تا گیدا مریدان بسیار ده هزار ازار بوده اما شعر بد میگفته مترس دیوانی ازش در دست دیوان شانمت الله که بزرگتر از دیوان حافظه احیانا دو سه باری هم سه باری هم چاپ شده و من اول بار در سنین خیلی کودکی یه اوز رمیزون رو پیندوز داشتیم در محل مون بود که پیندوزی میکرد و این ثبات داشت و من همون وقتا تعجب میکردن که این قیرمرد با این سواد و اینا چطور نشسته کار تیم. ولی جاسوس تو استان نبود بیچاره. تو همون دکون موند و همونجا مرد دنبال این که این از رو اومده اون بیست ناب. اول بار که اسم شاه نعمت‌الله شنیدم من ساعت 5 داشتم روش شب‌دالم بود و 10 سالم بود درست یادم نیست از او بود. و او گفت که شاه نعمت‌الله تمام چیزای اونجوری رو در بعدها در آینده اتفاق افتاد، همه رو بیشگینی کرده همه رو نمیدونم شاغ را بی... ملک بی را بیغرام میبینم نمیم که را فلان بینم. یا داره یه تیکهی هم ازش در دوره انقلاب یه تیکهی به نام شاهن عمد الله حالا دوستان خودشون ساخته بودن بر وزن او یا از دیوان شاهن عمد الله آورده بودن اون آوردن از دیوارم خیلی کار مشکلی نیست برای که اینا کلمات دو پهلو میگن مثل نوستراداموس محروف پیشگوی فرانسوی. یک چیزایی میگن که بشه تفکیف کنه به همه چیز و بعد که حادث اتباق میمسه تازه میفهمه میتونه که این میشه به این بشه است و پیش از اون نمی کنه برحال برای شانمت علام اما متاسفانه این سید جلیل القط بعد چهه میگفت؟ گفت که دوتا خطات رفتن پیش مولا علیه دربی طالب و دعوی داشتن یکی میگفتش که من خدتم بهتره میگفت من ختم بهتره و گفتن که حکم قرار میگیم مولا علی رفتن پیش حضرت و دعویشون عرضه کردند دو، گفتند و حضرت هم یکشون انتخاف کرد اون طرف قبول نداشت یعنی معتقد بود که خط خودش بیتری گفت یا علی اللهی داماد پیغمبری کننده در خیبری پدر حسن حسینی داماد پیغمبری چرار غیر فراری صاحب ذوالفقار همه اینا به جای خودش اما خطو نشمست <تصفح> حالا شان متعال با همه جلالت قدری که داشت من اگه جای شاه نعمت الله بودم اون شرار نمیگفتم از جمله غزلی است که من آوردم افتفاقا، اول میخونم این شعر که دو دفعه خوندیم الان جلو روتونه، بگرد از ما رو ناصف پلکونده گرفتم، باقی جلو روتونه این من میخونم، بعد اون حرف میزم میگه ما، ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم در حبس صورتی و چنین شاد و قررمی بنگر که در سراچه معنی چها کنیم رندان لاعبالی و مستان سرخشیم هوشیار را به مجلس خود کی رها کنیم موجب محیط گوهر دریا و عزتی ما میل دل به آب و گل آخر چرا کنیم در دیده روی ساقی و دست جام می آری بگو که گوش به آقل دوباره چرا کنیم ما را نفس تو از دم اشقه است لاجرم بیگانه را به یک نفسی آشنا کنیم از خود برا دعوی مریدگیری یعنی هم یعنی قصد طلب از خود برا و در صفح اصحاب ما خورم تا سیدانه روی دلت با خدا سیدانه تخلصه حافظ با اون تنز گزنده مخصوصش میگه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که بوشه چشمی به ما کنن درد را به بوشه چشمی دوا کنی. ما خواهد راه را به نظر کیمیا کنیم صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم میگه آنان که خواهد را به نظر کیمیا کنند آیا به وقت که گوشه چشمی به ما کنند درد را با دردش میگه دردم نهفته بهز طبیبان مدعی طبیبانی که دعوی دارن فقط باشد که از خزانه قیل پشت. دواب. عشوقه چون نقاب زروح بر نمی کشد هر کس حکایتی به تصور چرا کنه؟ همه اختیاراتیشون داره و بیا با یه نفس تحتیب کارتون کنیدیم اینجا حالا بعد میگه چون حسن آقابت نبرندی و زاییست آن به که کار خود به انایت کنند یه مسئله است در در علم و در اقاید شرعی روزگاره سعدی و حافظ و اینا که عقیده رایج معمولی بوده و او این بوده است که میگفتند بهشتی بودن و جهنمی بودن و سعادتمند بودن و شغاقتمند بودن شخص مربوط به انایت نیست. یعنی ممکنه یک کسی یه عمری نماز و طاعت بکنه و خداوند چون مردود در اول از نظر خدا این مردود بوده به یه مثل ابلیس که گفتن هفتات هزار سال و این بارها در شهر سواره آمده سعدی میگه که اگر خدای نباشد ای خوشنود شفاعت همه پیغمبران ندارد گناه نبود و عبادت نبود و همینا خلق نشده بود نه نبود و عبادت نبود و بر سر خلق نوشته بود که این مقبل است و آن مرد و تو خبیسی تو مرد این عقیده جاری رایش همین است که خاجم میگه میگه یه وقتی حسن آقابت به رندی و زاهدی مربوط نیست به لطف الهی مربوطه و در نفس آخر ممکنه کسی که ست بار حافظی میگه میگه قدم طریق مدار از جنازه حافظ که گرچه قرق گناه هست میرود بود میخانه یا سریبینی مزن به پای که معلوم نیست نیت یا میگه که زاهد وسه اون قرورش به جایی نرسید زاهد غرور داشت تلامت نبرد راه رند از ره نیاز به دار و سلام دار. این ست تا بیت شاید در بیوان حافظ پیدا کنید یک چم هم چون حسن آقابت نه به رندی و ظاهدی است آقا خیلی به رندی و زاهدی مربوط نیست بهتره که آدم شکار کنه کار خودش رو به انایت الهی واگذاره اون بیت قبلی میگوید که ما چنینیم و چنانیم و موج محیط گوهر در یاوی عزتیم نمیدونم ما را نفس رو از دم اشخاص لاجرم بیگانه را به یک نفسی آشنا کن. همه کار دست آغاز فقط بیان شد درست میشه قدید حافظ خوش نمیده از این کارا و اصلا سوطی نبودیه این کلمه سوطی رو اگه در واجنمای حافظ کلمات حافظ چه موردن در کتابی بگیرید مثلا چل پنجا بار کلمه‌ی سوطی به کار رفته تقریبا در تمام موارد با انتقاد سوطی نهاد دام سر حقه باز بنیاد مک با خلقه باز و نظاهری این هست که با این بساطه دوست خوب بود. نبوده میگه که تو خدا چیز میتوید تو ازش خبر داشت که بشین چون نقاب دروف بر نمیکشد هر کس حکایتی به تصور چرا کنه معرفت ما باش من یزیب به من یه حراجی من یعنی کی یزید رو یعنی زیاد میکنی من یزید یعنی کی زیاد میکنی حراجم که میدینیم چون بیزنن میگه صد تومن میگه صد ده میگه صد ده اونجا می صد بیس می این روشکن من یزید کی زیاد میکنیم یعنی حراج میگه توجه بکن که در حراج عشق اهل نظر فقط با آشنا معامله میکنه برای یه آدم لاتی ممکنه بیاده قیمت دواره بالا و مشتری اصلی که بلوده از دست بره بنابراین توجهی رو اون ندارن که ثانی رو به قیمت بذاشتنشون متوجه هم که بشناسنشون رو دارن که این برای خریدان میگه بیمعرفت مباش معرفت معنی شناسایی شناسا باز. آشنایی غیره برای اینکه در حراج عشق اهل نظر فقط معامله با آشنا میکنن قراری تو امیدو که بیگانه یاد ما با یه نفس ترتیب چی میگیم؟ آشنا میکنیم سوتی ها یه خود ریاوینام تو کارشون طبعاً بوده دیگه شکری نیست اینه که میگه نیخورد که صد گناه از اغیار در هجاب صد تو گناه تنهان اگر بکنی بهتر از است که از روی ریا بکنید ریا عبارت است. از آب و تاب دادن عبادت یا کار نیکوب برای خوشایند مردم برای اینکه بگن به به این آقا چا آدم بود اینو میگن شرکه برای اینکه عبادت برای خداست و کسی که برای خوشایند خلق نمازشو طول میده این برای خدا شریک قائل شده این کار مخصوص خدا رو برای خوشایند مردم یه خوضه کشش داده این است که هیچ چیزی رو بدتر از ریا نمیدونه و قضالی در کتاب احیاء علوم الدین یک کنج پاکی روانی عجیب و غریبی در این باق می که هو شخص دار آدم می انواع اصلا به ریاهار میگه میگه میگه می می اینجور میشه اینجور میشه اینجور میشه اینجور می این خیلی ساده است میگه ولی انواع پنهان ریاه هست که خود صاحبش خبر نداره سالها سیال می که عبادت خدا رو داره می در حال که بیا داره می کنه. و میگه از رد پای مرچه و روی سنگ خارا در شب تار تنهان بعضی از اخسام دیگه مثلا، حالا یه مثالشم بزنم برای اینکه فکر کنید که اونجوریه ها یه <تصفيق> مردیه آبد و زاهد و مسلمون و متوازه و دست و پاش خیر و همه کارهای خوب بکنه و خدمت به مردم بکنه و همه این کار رو بکنه و همهش هم پیش خودش فکر کنه که من محسن الله فقط برای خداست که این کارا رو می‌کنم هر کشی پیش خودش فکر می‌کنه که بله من هیچ حرف رو در این کارا منظور نظر نداشتم بعد میگه یه وقت این بیاد توی مجلسی ببینه که اون جوری که باید اینا تحویلش نگرسه یعنی یک کسی دیگری رو بیشتر از این بهش عزت داشتم. اگر این در دلش رنجش پیدا کنه و فکر کنه چه مردم بی معرفت حق ناشناسی هستن این کارش روی برای که در این کاراش منتظر این بود که مردم یه چیزی یه خوش آمدی یه عزتی یه جلوپا برند شدنی بکنن این ریاست بعد میگه از این از این عجبتن. اگر یه کسی بیاد و تمام این کارهای خیر رو همه رو بکنه بعدم به این حساب که من در راه رضای خدا عمل کردم اتفاقاً بعد از 4 پنج سال یه آدم دیگه هم پیدا بشه اونم همین جور کارا رو در راه رضای خدا بکنه میگه اگر این از فعالیت اونی که آدم در دلش احساس رنجش بکنه و فکر بکنه که ای بابا اومدن در مقابل دوکنمان به دوکنمای کردن این کارش روی هست و کسی که برای رضای خدا این کار میکنه هر چقدر اده بیشتری بیان این کار رو بکنن اون راضی تر و شادتره. میگم یک نوع کنجکابی کرده غزالی در این باب که واقعا آدم متحقیر نمونه که این مغز این در اون سالا این چهارسد پنجاه به دنیا آمده پونسد و هم مرده پنجا پنج سال هم بشه و در این پنجا و پنج سال اوم هیچ آدم از علمای دینی هیچ آدم تا امروز و اندازه غزالی با اندازه امام محمد غزالی روی شیعه و سنی و همه مسلم اونا تحصیل نداشت. هر حال، اینه که ریاض خیلی پنهانه و طور است که هیچ طرف خودش هم حس نمیکنه، کنه، ریال نمی کنه که ریاض، اینه که میگه که می خور صد گناه زعضیا در هجاب بهتر تاعتی که بر رو ریا کنه. قراهی که آید از او بوی یوفپن ترسم برادران غیور است قبا کند. قبا لباسی است که جلوش بازه. و جامعه یا پیراهن به سی جلوش بسته است. و هنوز در بچگی ما در دوره یک منت و در پونزه سال هم, هم شده بود پیراهنایی که داشتیم جلوش بسته بود. یه چند دو جنونی خود تا پیش سینم بعد باید از سر مدرد پیراهن جلو باز که حالا اقلال پیراهن ها جلو بازه خیلی برد این هست که جامعه به لباس باز میگون می گفتن جامه به لباس جلو لباس می و قبا به لباس جلو باز و جامه قبا کردن به معنی دریدن جثه است حافظ میگه چون گل گل ونی گل سرخ چون گل از نچحت او جام قبا کن حافظ گل تمام برگشت که دست بید تا پایین چاکه چون گل از نکته او نکهت یعنی بوی خوش چون گل از نکته او جامع قبا کنها فیزبان قبا در ره آن قامت سالاک اندارد میرسیم به که زیست و قصه یوسف و برادران یازدهگانه دیگرش که میبرن و به چاه میاندازنش و بعدم میارن گیرون و میفروشنش عذیتش می‌کنن اینا که روشن براتون و به هر حال جای بحثش اینجا نیست و بعد قصه این که یعقوب هم از کمی و صبح بیت الاهزان نشست در, در اتاقی که دوشه گرفته اونجا و همش گریه می‌کرد و در نحچه گریه چشماش سفید شد یعنی پوز شد این از ودگز زد ایناها من الهوز تو که و بیز زدت عیناها من الغوزن و هوا کزین چشمش از از پندو سفید شد و بعد وقت که یوسف عزیزی مصر رسید که عزیز مصر در حقیقت تیزکار فرعون یا آدم یست مقامی در اونجا بوده به شخصی حالا یا اسمش بشیر بوده یا به عنوان اینکه که این بشارت رو می آورده اسمش روشن باشدن یعنی صفتش بوده من نمی دونم یه بشیری پیراهن یوسف رو میاره. و وقتی که به شهر چند داشته می رسه به دروازه می رسه یعقوب میگه نیل عجد و ریح یوسف لغرا انتفهند ندونید اگر منو سرزنش نکنید من بوی یوسف رو میشنم بوی پیرا گم کرده خود میشندم بر بگویم همه گویم زلاوی قدیم شهر سرد بعد هم و بشیر میاد و پیراهن رو میاره و به یعقوب میرسونه و یعقوب اون پیراهن رو به روایت قرآن به چشمش میکشه و چشمش اینا میسه عرض کنم که قصه خیلی قصه جالبی است و بهتر است که این قصه های قرآن رو یک کتابی هم بنامه قصه های قرآن در آماده که آقای دوتر یحیای مهدوی قصده قرآن در آمده که آقای دکتور یهگی های مهدوی استاد محترم ونده در آوردن این کتاب مثل که جوز انتشارات خوارزمیه اگه میل داشته باشین من جلسه بعد ممکنه مشخصات جوزی ها بیارم. البته متاسمانه همه قصده های قرآن رو گویا نداره ولی بسیاری از قصده ها رو داره و البته همه ماها این قصده ها رو چم و بیش میدونه. ولی به قول شما ها دیتیلش دیگه ندید اینا یه جزئیاتی داره که <تصفح> اون جزئیات رو نمیدونید و بهتر است که به تفسیر اینا رو بخونید این اشاره به همون مطلب و سعدی <تصفح> یه ایراد خیلی جالبی رو مطرح میکنه میگه یکی پرسید از آن گم کرده فرزند از از علیکم از یارو، یکی پرسید از آن گمگرد فرزند یا گمگشت فرزند که ای روشن روان پیر خیرد من ز مصرش بوی پیراهن شنیدی ز مصرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاکنانش ندیدی؟ به گفت احوال ما برق جهان هم. جهان یعنی جهنده به گفت احوال ما برد جهام هست دنی پیدا و دیگر دن نها هست گهی بر تارم اعلان گی تا پیش پای خود ندیم و این خاصیت آدمیزاده میگن آدمیزاد داره احوال ثابته نیست احوالش متفیده نیست برحال میگه پیراهنی که آید از او بوی یوتفم ترسم برادران قیورش قبا خونن یعنی پارد حویی در رون فرده بسی فتنه می و تا آن زمان که پرده بر افترد چه ها باز مثل این که سید معتقد بود که ما همه رو می بینیم همه چی رو می دینیم همه کار بله چیزش اینه در حبس صورتیم و چنین شاد و خرمی که در سراچه معنی چه ها میگه حالی در اون پرده وسیفت نمی تا آن زمان که پرده بر افتد شها کنم این همون چیزیست که تایامم میگه میگه که اسرار ازل را نه تو, تو این خط معما یا حل معما نه تو خانی تو هست از پس پرده گفته من و تو چون <تصفيق> پرده بر افتاد نه تو مانیه حالی درون پرده بسی فتله می روه. تا آن زمان که پرده بر افتاد جا خونه گرسنگ از این حدیث بنالت عجب مدار اینجا به روخ سید چه که شعر اگه می خواهید این دیگه با از این حدیث بنالت عجب مدار صاحب دلان حکایت دل خوش عدا یعنی خوب اجرا کنید حکایت دل. و بازم آخرش تنه ایسته دوام بس موثر نمیشه. دل. شاهان چند التفات به حال کنید یکم خیلی میزنم در مرد که در اکثر نصفه ها در پیسکر نصفه ها باشه و ایناش در نصفه های خیلی کمی هست در یکی یکیش در یک نصفه فقط هست این یکیش هم مثل که در دو نصفه فقط هست به این دلیل میگه که ما اینها رو تو هاشیو خب خب زاهدان یک دلبریز اینسان کنن زاهدان را رحمه در دیمان کنن من آن شاخ نرگست پشکفت گروه خانش دیده نرگستان کن یار ما چون سازد سما سما سما یارم ما چون سازد آغاز سما قدسیان بر دسته شان ای جوان سرگل گوی بزن پیش از آن تزقامتت چوگن کن آشغان را بر سر خود پرک نیست هرچه فرمان تو باشد آن کنن مردم چشمم به خون آغشته شد در کجا این بر انسان کنن تر از قطره آن آنتکایت ها که از توفن کنن قید ای تو اید کو... اید ای رخسار تو کوتا آشغان در وفایت جان خود قربان کنن خوشبرا با قصد ایجن با قصد خوشبرا با قصد خوشبرا با قصد ایجن که راز خود در گوطه هجران کنن سرمکش ها فز آهلین شب صبح هایمه رخشان کنن با مثال ساده است نسبتا چیزی نداره آشغانم شاهدان گرد دلبریز انسان کنند زاهدان را رخنه در ایمان هر کجا آن شاخ نرگس پشت کفت گل روحانش دیده نرگستان کنند ما چون سازت آغاز سما قدیان بر عرش دست دفشان کنند ای جوان سر گویی بزند پیش از آن که از قامتت جوغان کنم، آشغان را بر سر خود حکمی هر چه فرمان تو باشد آن کنم. مردم چشم به خون آهشته شد در کجا این ظلم بر انسان کنم؟ پیش چشمم کمتر است از قطره ای آن ها که از توفان کنن ای در تو کو تا عاشقان در وفای از جان خود قربان کن خوش برابا با ای ده راز ای خود در بوته هجران کن سرمکش مکش حافظ ز آه نیم شب تا چود دو آینه رکشان کن این فقط بعضی چیزهای لطیف و زیبا و بعضی زرافت های این اشاره می کنم. چون غذر نشکتن غذر ساری شاهد به معنی آدم زیباست خیلی هم برای زن و مردش هم نداره شاهدان یعنی زیبایان و می‌دونید که در جامعه اسلامی که زنان همیشه پشت پرده بودن روی زیبای زنانه خیلی در منظر و مرآ نبود و همین دلیل بسیاری از شعرها زیبایی پسران جوان رو وصف کردن، چون شعره این و این رو به هیچ وجه دلیل این نمیشه گرفت که اینا جز اطایفه اسمال قربونن و شاختار زمین میزنند خیلی ممکنه باشن ممکنه نباشن. بنده وکیل مدافع هیچ کدوم از شعرها نیستن به خصوص که شاعر جماعت وصعت مشرب هم داره یه قدری تسلب و فعصب در عقیده نداره این است که ممکنه باشه اما به صرف اینکه که زیبایی پسرانه رو یه شاعری بس کرده بگیم که این اون کاره است این, کار این اصلا درست نیست بانه که ممکنه اصلا نداره بیشترینی شون هیچ زیبایی زنانه ای وجود نداشته این زنش رو میدیده و بچه شده به اینا که عادت کرده و کنیز و همون گلیل بیشتر زیبایی زنانه زیبایی چینیه میگه به تنگ چشمی آنطور که لشکری نازم که حمله بر من مسکین یک خبابم سعدل داره هر که تماشای روی چون قمرت کرد سینه سفر کرد پیش تیر ملامت همه میدونن که روی نجاد سفیر گرد نیست گرد رخداره فوریان طلاق. و بعضی نصفهای سعدی است هر که تماشای روی چون سفرد کرد سینه سفر کرد پیش تیر مل آمد بنابراین زیبایی زنانه خیلی در جاهای نادری مثلا در داستان ویس یا در داستانهای نظامی اتفای داست... نظامی آدمیست که هیچ دنبال وست زیبایی که سرانه نبوده و ممکن شما استدلال بکنیم که خب اگه اینجوره پس حتما اونای ریتی به کپششون داشتن وگرنه چطوری که نظامی اینجور نیست بایدی هستن جوابش این هست که نظامی در جای زندگی میکرد در گنج؟ که سرحد ایران و روم و قفقاز و اینا بوده و صاحبان مذاهب مختلف در اینجا رفت آمد داشتن و بسیار زنای بیپرده میدیده به علاوه مادرش هم کرد بوده و ما میدونیم که هیچ وقت حجاب در بین عشایر وجود نداشته فنابراین نظامی زیبای زنانه رو میدیده و به همین دلیل هیچ احتیاجی نداشته بینیده زیبایی پسرانه رو هست برحال شاهد میتونه زن باشه میتونه مرد شاهدان گر دلبری زیمسان کنند زاهدان را رخمه در ایمان کنند میگه اگه اینجور به این ترتیب بخوان دلبری بکنند هیچ زاهدی هم جون به در نمیبره ایمانشو از بین میبرن رخمه میکنن در. هر کجا آن شاخ نرگس به گفَت معشوق رو تشبیه میکنه به شاخه نرگس ظریف و زیباست ظریف سبز نودکه بالاشم گل نرگسی که قشنگ معشوق رو تشبیه میکنه به شاخ نرگس ارزم نرگس حال ببینید حواسش چقدر جمعه در ظ نرگس بسیار تشبی شده به چشم یه نرگس ببین که پیش تو بش گفت، چشم دریده دب نگاه. اینه که میگه هر کجا آن شاق نرگس بش خود گرو دیده نرگستان کنه. به هر حال وقتی که نرگس رو تشبیح میکن به چشم همیشه مشببه، باید از مشبهان به کمتر زیبا باشه یا شجاعه وقتی میگن که ناثر پل مثل رستنه معنیش این نیستش که این از رستن گردنش پلوفتره حتما رستم که به اون تشبیح میشه شجاعه و پلوفتره که اینو به اون کشیم. بنابراین وقتی نرگس رو به چشم تشکیل می خود این کار معنیش است که چشم از نرگس زیباتره دیگه درسته؟ چشم از نرگس زیباتره این دلیل میگن نرگس نشون میگه این شاخ نرگس هر جا شکف زیبا رو چشم خود چونه گردون رو می کنن چقدر قشنگه و چقدر توجه داره به این که وقتی میخواد زیبایی رو بگه برس کنه به اون خوب یار ما چون سازد آغاز سما سما متأسفانه در ایران ورخده ولی در ترکیه و در پاکستان هست الان نوعی موسیقی در حقیقت مذهبی است مذهبی هم نیست ارفانی است چون ایران معتقد بودن که رقص و موسیقی باعث لطیف کردن روح می‌شوند و برای تسلیه‌ی روح از این دوتا استفاده می‌شوند و حتی علم‌های خیلی بزرگ در این باب حرف‌های زیاد دادن بعض‌ها بفتن حرام، بعض‌ها بفتن حلال انواع‌ها هم سعدی در چهارز پنج ویت ساده نظر امام غزادی رو که سندیت داره میگه میگه نگویم سما ای برادر که چیست اگر مستمع را بدانم که چیست میگه سما برای هرکسی سایستمیست گر از برج معنا پرد او یعنی اگر فکرش متوجه عالم معناست فرشته فرو مانده است زیند او اگر مرد لهو است و بازی و لاق قوی تر شود دیو شند در دماغ پریشان شود گل به باده سحر نهی زم که نشوافتش روز تبع اگه واسه سما برای اهلش خوبه به همین دلیل هم مشایخ صوفیه رو در مجلس سما راه نمی‌دند به هر حال این در پاکستان الان جنبه عمومی گرفته و بهش میگن قوالی و گاهی قوالای خیلی خیلی ممتاز درجه یک هستن که اینا میان و بیرون نمایش میدن سازهای خاصی دارن و کارایی و فوق العاده. چیزاشون جالب در بیت در سال پیش که پندر رایزن فرهنگیران در پاکستان یه قبال در جبالی بود که شاید الان دیگه مرده باشه الان کسان رو گرفتن به عزیز عزیزمیان این عزیزمیان ما دعوت کردیم به جشنان هنر و این ده هزار جمعیتی که در این دشت هنرسو زور پیدا کردن. تمام اینا رو رقص آورده فعال این که اینا نشسته هم تاز میزن اونم یعنی پانه ولی در چیزا درویش های مولوی هم همکنید اینا این دستگاه هاشون و بندبساتشون و اون رقصشون و اون سمایشون و اینا رو الان نمایشی کردن و من در سال 771 هفتاز، که در لندن بودن یه بار ناماده بودن اونجا از اون سال با همون لباسای دوره مولانا با همون سازای دوره مولانا و اول یه آیه قرآن تلاوت میکردن که یه خانندهی بود کور بود و چون قرآن رو از حفظ میکن بهش میگفتن حافظ اون صدای خوش همجاست لغا حافظ رو کسی میگه که قرآن رو از بر داشته باشه و به خوش به خانه بنده که هیچی پدر مرهوم هم, هم که تقریبا تمام قرآن رو از برداشت هیچ هیچوقت لغا به حافظ نمیتونست بگیره. چون صدای خوش نداشت بنده که بکتره باشه که حافظ بهش میگفتن اول یه چیزی خوند و بعدم هم شروع کردن به چیزا و درویش در چرخ آمدن با آین خاصی امیدوارم دیده باشون دیده من حالا توضیح اون نمتونم در حال اون سماعه به خیلی از مشایخ تصوف و علمای دین بعضی گفتن حلال بعضی هرام خیلی اختلاف نظر در بینیم میگه یار ما چون سازد آغاز سماع به قدر این سماعش خالص و خلص و از ذر قلب و نیاست که فرشتگان در عرش دست دفشانی میکنه قدسیان در عرش دست رفشان کنن عرش اصلاً معنی تخته و کرسی به معنی است. هنوز در پاکستان میگن کرسی برای کسی سندلی میخان بذارن میگن کرسی رو بیار. یعنی سندلی و البته در قرآن عرش و کرسی به عنوان مقام الهی آمده است و هفتای یه آیه بسیار معروفی از آیت الکرسی که امیدوارم اغلب دوستان حفظ داشته باشم که لعقل تو پوششون خونده باشن الله لا اله اللهو والحیی القیون لاتح خود روی شنتون ولانون لهو مافظ سما واطر نامافظ عرز عرز کنم که اما آیه هایی که این عرش و کرسی اینا درش آمده بهش میگن آیه های متشابه یعنی آیه هایی که معنیش معلوم نیست ان الله خلق از والارض في سته ايام ثم استوى على العرش معنیش این است که قراون زمین و آسمون رو در 6 روز آخری روزی گردوند بعدا روی تخت قرار مسلمان ها قابل قبول نیست خدا رو جست نمیدونن اصلاً چیز نمیدونن در بسیار مسائلی دیگه که میگوید که در قرآن خودش سریحا میگوید که آیات قرآن دو جوره یکی محکم محکم یعنی آیاتی که درش حکم آمده نه اینکه محکم منی قرص و محکم نیست محکم یعنی آیاتی که درش حکم آمده مثل آیه هایی که کفته نماز بکنیم کفته روزه بگیریم کفته حجو بدیم این میگن آیات محکم یا بهش میگن آیات الاحکام آیات الاحکام هم میکن. بعد میگه یه آیه های دیگری هست متشابه آیات خیل دست شما آیات دیگری هست میگن متشابه و این آیات متشابه که میگه مادرش کتاب مادر کتاب لا يعلم تعبیره الا الله و راسخون فالع هیچ کس تعبیر و تفسیر اونو نمیدونه مگر خدا و کسانی که در علم راسخند یعنی باورجا و استوارن به حال عرش رو داشتم میگفتم یار ما چون سازه بالای سما قتیان بر آرش دست کنند ای جوان صرفت گویی بزن گویی زدن ماره بازی چوگانه طبیعی سی به معنی موفق شدن و موفقیت ایده کردن یعنی یک کاری بکن بله بگه جوانی موقع فعالیته برای اینکه آدم یه زخیری، حالا ارمی، پولی، یا هر جور دیگری برای روزگار پیریش باقی بگذاره میگه ای جوان سرغت قد بلند زیبای لیر گویی بزن پیش از آن که از خامتت چوگان کنن چوگان خمیده است میگه پیش از این که خمیده بشی و پیری تو رو به صورت چوگان دردیاره فرصت و قنینه یک کاری بکن. چیزی ها اسمره جامعه، به یه پسر جوونی مسر اولش آدم وقت. تازه جوانی, تاز جوانی ز سر ریشخند گفت پیری که کمانت به چند؟ تیر به و به گفته جوان چرخ طرا نیست دهد رایگان. ای جوان سرگرد توی بزن پیش از آن که از خواهمتت چوبان کنن را بر سر خود حتمیست هرچه فرمان تو باشد اردم چشمم به خون آغشته شد چند بار دوی اینو گفتن که این عشق خونی و اینا مبالبه شاعرانه است هیچ وقت عشق خونین نمیشه شما اگه شبها و روزهام گریه کنید خون به جای عشق از چشم نمید. ولی رگ های چشم، بگه های چشم، برجسته میشه و سیفیدی چشم سرخ میشه این رو تعبیر کردن و خونیم شدن مردم چشم رو در عربی بهش میگن انسان ال این همون ترجمه مردم چشم مردم که چشم یا مردم چش، این سراخ و پوچک. دوراخیست که از اون دریچه دریشتان دنیا رو بینن مردم به همین دلیل اسم میگوشتن مردم یا مردم که چشم در عربی هم بهش میگن انسان و این اینه که میگه مردم چشم به خون آغشته شد در کجا این ظلم بر انسان کنن این انسان که اینجا آورده ایهام داره هم به معنی مردم چشم هم به معنی آدمی زاد پیش چشم کمتر است از قطره آن حکایت ها که از طوفان کنند رسه طوفان طوفان دوران حضرت موه که این قصه در بین تقریبا تمام ملل هست. در رسه های باستانی ایران هم یه طوفان بر هست و چون طوفان آب علاجش ساختن کشتی، توفان برف که نمیشوستش کشکی سیزن و ایران منطقهی بوده است گرش برف زیاد بارندگی نوسته خلاف عراق بینو نهرین تو اونجا توفان که میشده بارندگی شدید میشده شهردالعرب تویام برای در ایران برد اینی که میگه در دوره جمشید احورام ازلاق جمشید گفت که احریمند در صدر به کار بدیست و به زودی برس شدیدی خواهد بارید و سرمای شدیدی در زن به شما بگم که در عویستا دو زخ جایگاه بسیار سرگیست یعنی مردم در اونجا از سرمایه ما و تصبر زمحریر که در اسلام هست که میگن سیده ها رو نمیورن جهنم میبسن زمحریر که زمحلی رو که یادم بیشتر خوش می‌تریدی که چی می‌کنی، تاکت سرمایه می‌گیرم نه همونطور، و هر حال این نشانه این است که ایرانیان از نواحی بسیار سردی ماجرا کردن آمدند به ایران. این است که یکی از آفات‌های بزرگ به نظرشون سرما اینجا احورام گفت که احریمن بگید که حمله خواهد آغاز کرد و برد به بسیار خواهد بارید و وظیفه تو این است که یک جای سرپید، یک باق سرپوشیده بسازی به نام ور اسمش ور و در عوستا و در آثار ادبی به نام ور جم کرد یعنی وری تو جمشید او رو ساخت بعد دستور میده که طولش چقدر باشه، عرضش چقدر باشه پنجره چجور بذاری، بچکار بکنی بعد میگه از حیوانات چی رو بیاری؟ جفتهای خیلی خوب از حیوانات انتخاب کنی آدم ها رو همینطور آدم های گوش پشت توسید دندان کسانی که عیب‌های های ظاهری یا باطنی دارن اینا رو بار نیاری و یه عده ای رو بیاری اونجا نگهداری بکنیم تا توفان بعد بردرب شه و بعد اینا پیان پیرون و نست به در چین و ژاپن و اینجا هم افثانه های توفان هست دلیلش هم اینست که این قهر عظیم قدیعته و به هر قوم هر جایی که باشن براشون یکی از بزرگترین بلاهایی که امکنه این, این است که خود توفان نو هم سابقه خیلی قدیمتر داره اولین جایی که در اشاره شده در هماسه گیرگمشی گیرگمش مال چیز باقله و تاریخش برگرده به چار پنیزار سایی در دست این و خوندن و ترجمه کردن حسوی طوفان در اونجا است. پیش چشم هم کمتر است از قطره ای آن حکایت ها که از توفان کنند اید رخصار تو کوز تا آشغان در وفایت جان خود توفان کنند اولا هیچ وقت در ایران قدیم به نوروز نمی گفتن یا می گفتن جشن یا می گفتن نوروز علم دولت نوروز به صحرا برخواست لشکر زحمت سرما به سر ما برخواست ابر آزاری برامد باد نوروزی و زید می رسیم الان دوش می رسیم انواع اصلا اینو هست همشت قبط نوروید که می برای اهل سنت یکی اید قربانه در دهم زلحجه ایده ازهابش میگن به فارسی هم اید گوزپند کشان میگن روز آخر حج در مناصل حج حاجی ها مجبورن قربانی بکنن کسان دیگری یعنی هم که موفق و زیارت هج به نیدیت سباق قربانی میکنن و گوشتشو تقسیم میکنن بین این مستحر این که هم میده فطره که روز اول شب باله و از بین رفتن روزه که باز حلال ماه شدباله که دیدن، فرداش روز گرفتن حرام و بهشت بگم میده در اون روزم باز یه حق مقرره که اشخاص باید فتریگیه بدن و فتریگیه عبارت است از, از یه نوع زکاتی یه نوع مالیات دینی تو از تعداد افراد خانواده بذارم کنار پول یک من قوت قالب یعنی اگر در شهر پرنج میکرم پرنج، اگر نون میکرم نون، اگر خورما میکرم خورما بگذارن و برای هر فردی و این رو بدن دو آدم مستحق این جزء زکات حساب بشه. و بهش میگن زکات فطر. این رو بعد پیش از قرار رسیدن عید فطر کنار بذارن از مال خودشون را بکنن و بعد در روز عید فطر یا روز بعد اشخاص مستحق تقسیم شه. به حال اید همین دو تا است. پیشه و ما شیعه های دوازده امامی دو تا اید دیگه هم داریم یکی ایده قدیره که هیچده ها و ما معتقدیم که در اون روز رسول اکشم مولا علیه ابن عبی طالب رو به چانشینه خودش منصوب فرمود و مقرر فرمود که در جایی به نام قدیر خم منبری از جهاز شفرات حسید و قرح خالای منبر و فرمود که من کنتو مولاه فهازا علی جن مولاه اللهم وال من والاه و عاد من آداه و انصول من نصره و من خزله و این رو همه همه, همه هوایف اسلام این حدیث رو کرد نه اینکه فکر کنید که عرصان این حدیث رو نکرد. نروی کرد ها می گویند که این چه من مولای هرکس هستم علی مولای اوست این به معنی علی جانش نیست معنی که ما این حدیث رو میکنیم عرض سنت قبول ندارم به هر حال یکی اید قدیره مجده زل یکی هم اید نیمه شعبانه که به ما روز تولد امام دوازده هم حضرت قائمه که خیلی این دوتا رو مثلا از دوره صفحه بعد با آب و تاب پرابان برگزار میکردن برای اینکه ایده محسوس سیه بختار تو کوز یه رخصار تو ایده تو تبخان لده یه چیز قشم دیگر این باق داره بخونم خدا رحمتش کنم یه گفتمش بوسه دهی گفت هنوز نوبت آن نرسیده است مرا بر تبریج ببوس از من روز چون به نو روز دهیده است مرا گفتمش موعد یک ساله با تا مدتی سخت مدید است مرا جان من قوسه برید عذر ما یاد. روز دیدار تو اید است ایده اید رخصار تو کو تا عاشقان در وفای جان خود قربان کن روشنه خوش برا با خوسته خوش برآمدن. مدن یه اصطلاحی بوده در دوران حافظ باز در بیت دیگه میگه بده کشتی گمه تا خوش برای از این دریاه نافیداتران خوش برآمدن یعنی با رضای خاطر و با گشاد روی مقابل کردن با چیزی که میگه که با قصه خشت برا یعنی اگر قصه ای داری سجم و بدخون نباس و این قصه رو با گوشاده روی تهمل کنید خشت برا با خصده. ای راز در نصفه مرحوم قذنیمی هست ای خوش در بوته هجران کنند بوته وسیله زرد زرگ از گل نسوس که کاغت دو هزار دریجر دو هزار, دو هزار رفت داره و تلای آمیخته با چیزهای دیگر رو میریزن توی او و میزنن توی پوره هر فلز دیگری همراه تلا باشه اکسیده میشه میسوزه و از میره فقط تلا باقی این مونه خالص و میاد بیرون سعدی میگه سیاه سیم زرندود سیاه سیم یعنی سرب سیم سیاه یعنی سرب سکه های قلب که از بود روش یه پوشش طلا بود میگه سیاه سیم زرندود چون به بوته برند خلاف آن به درایت قلب پندار این چیزی باید در نمی دستم کم در به حال بوته محل گداختن تمام فلزات و سوختن نیست نیش شدن بعضی از اوناست میگه هجرانم برای عاشق در اون قفس است میگه ولی اهل راز در بوته هجرانم عیش میکنه حالا اگر نوسه قزمی باشه عیش خوش اگرم نوسه فانلری باشه عیش خود فرض سر مکش، حافظ زعاه نیم شب تا چه صبحت آینه رخصان کنن همیشه عبادت و دعای نیم شبی به دلیل اینکه شب آخر شب آرام خیلی سرخیدان نیست حواس آدم جمعه کسی مراقب احوال آدم نیست این هست کسانی که میخواستن عبادت خالی از روی و ریا بکنن اینا اواخر شب رو انتخاب کردن در این کار و نماز هایی هست نماز شب به یه از راهتان اینه نکنیم میگه که هم آه اگر میخواید بکشید بذاریم این شب صبح رو بعد بگم که صبح به معنی که شما فکر کنید نیست صبح تاریکه تایی بکنید من فارسیش هست شبگیر شبگیر یعنی صبح این و اولین نشانه های کلو آفتاب میشه که دو تا یکی رو میگم کاذب یکی رو میگم صفه سادیه کاذب اول طولون میکنه مثل یه میله روشن در افق مشرف دیده میشه بعد از مدتی این مرد بعد از یه روز نیم ساعت و سال اینا دوباره روشنهایی پخش در افق مشرف پیدا میشه و صبح ساده بسید وقتی آفتاب زد دیگه روز دیگه صبح نیست حفظ که صدق پوش که خورشید زاید از نفس است. یعنی آفتاب نفس صبح نیست نفس که می آفتاب نیست صدق پوش که خورشید زاید از نفس است. که از دروغ سیه روی گشت توپن و خود توپن و خود یعنی توپکازه سرمکش حافظ سعاه نیم شب تا چو صبحت آینه رخشان کنن خب چه آینه ای از خرشی درخشان بکن من دارو ببخشید غزل دیگری مطرح نمی کنید فاتن گرمونده اونم دیگه